اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تنزیل الکتاب من الله العزیز الحکیم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر این کتابی است که از سوی خداوند عزیز و حکیم نازل شده است. انزل الیک الكتاب بالحق فاعبد الله فاعبد الله مخلصا له الدين ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم پس خدا را پرستش کن و دین خود را برای او خالص گردان الا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم ما نعبدهم إلا ليقربونا الى الله زلفى إن, ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن آگاه باشید که دین خالص ازان خداست و آنها که غیر خدا را اولیای خود قرار دادند دلیلشان این بود که اینها را نمی مگر به خاطر اینکه ما را به خداوند نزدیک کنند خداوند روز قیامت میان آنان در درانچه اختلاف داشتند داوری می کند خداوند آن کس را که دروغ گو و کفران کننده است هرگز هدایت نمی کند لو اراد الله ان یتخذ ولدا الاصطفا مما یخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار اگر به فرض محال خدا میخواست فرزندی انتخاب کند از میان مخلوقاتش آنچه را میخواست برمیگزید منزه است از اینکه فرزندی داشته باشد او خداوند یکتای پیروز است خلق السماوات والارض بالحق یکویر اللیل علی النهار و یکویر نهار علی اللیل وسخر الشمس والقمر كل یجری لاجل مسمی الا هو العزیز الغفار آسمانها و زمین را به حق آفرید شب را بر روز میپیچد و روز را بر شب و خرشید و ماه را مسخر فرمان خویش قرار داد هر کدام؟ تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه می‌دهند آگاه باشید که او قادر و آموزنده است خلقاکم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم وانزل لكم من الانعام ثمار ازواج يخلقُكُمْ في بطُونِ أمهاتكم خلقا مِنْ في از ظلمات في ظلمات یک نفس آفرید و همسرش را از باقی منده گل او خلق کرد و برای شما هشت زوج از چهار پایان ایجاد کرد او شما را در شکم مادرانتان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر در میان تاریکی های سگانه می بخشد. این است خداوند پروردگار شما که حکومت عالم هستی از آن اوست هیچ معبودی جز او نیست پس چگونه از راه حق منحرف می شوید این تکفرو فإن الله غنی عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشکرو يرضه لكم ولا تزر وازرت وزر اخرى ثم الى ربكم لرجعكم فينبئكم بما كنتم فينبئكم بما كنتم تعملون انه عليم بذات الصدور اگر کفان كنيد خداوند از شما بی نیاز است و هرگز کفران را برای بندگانش نمیپسندد. و اگر شکر او را به جا آن را برای شما می پسندد. و هیچ گناهکاری، گناه دیگری را بردوش نمی کشد. سپس بازگشت همه شما به سوی پروردگارتان است و شما را از آنچه انجام میدادید آگاه می سازد. چرا که او به آن در سینه هاست آگاه هست. و مس الانسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم اذا خوله ثم اذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل نسي ما كان يدعو ایلیه من قبل واجعل لله اندادا ليضل عن سبیله قل تمدع بكفرك قلیلا من اصحاب النار هنگامی که انسان را زیانی رسد پروردگار خود را میخواند و به سوی او باز میگردد اما هنگامی که نعمتی از خود به او عطا کند آنچه را به خاطر آن قبلا خدا را میخواند از یاد میبرد و برای خداوند همتایانی قرار میدهد تا مردم را از راه او منحرف سازد بگو چند روزی از کفرت بخره گیر که از دوزخیانی ان هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخرة يحذر رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اول الالباب آیا چنين کسی با عرضش است یا کسی که در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قیام از عذاب آخرت می‌ترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است بگو آیا کسانی که می‌دانند با کسانی که نمی‌دانند یکسانند تنها خرد مندان متذکر می‌شوند قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب بگو ای بندگان من که ایمان آورده اید، از مخالفت پروردگارتان بپرهیزید برای کسانی که در این دنیا نیکی کرده اند پاداش نیکی است و زمین خدا وسیع است اگر تحت فشار سران کفر بودید مهاجرت کنید که سابران اجر و پاداش خود را بی حساب دریافت میدارندقولنی بگو؟ من مأمورم که خدا را پرستش کنم در حالی که دینم را برای او خالص کرده باشم و امیرتو لئن اول المسلمین و مأمورم که نخستین مسلمان باشم بگو من اگر نافرمانی پروردگارم کنم از عذاب روز بزرگ میترسم. قل الله اعبد مخلصا له دینی. بگو من تنها خدا را میپرستم در حالی که دینم را برای او خالص میکنم و اعبد وما شئت من دونه قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه ذلك هو شما هر را جز او میخواهید خواهید بپرستید بگو زیانکاران واقعی آنانند که سرمایه وجود خیش و بستگانشان را در روز قیامت از دست داده اند. آگاه باشید زیان آشکار همین است لهم من فوقیم ظلل من النار و من تحتیم ظلل ذالک یخویف الله بی عباده یا عباد فتقون برای آنان از بالای سرشان سایبانهای از آتش و در زیر پایشان نیز سایبانهای از آتش است این چیزی است که خداوند با آن بندگانش را می‌ترساند ای بندگان من از نافرمانی من بپرهیزید و یعبدوها الی الله لهم البشرا فبشر عباد. و کسانی که از عبادت طاغوت پرهیز کردند و به سوی خداوند بازگشتند بشارت از آن آنهاست حسبندگان ما به شارتند يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب هم کسانی که سخنان را میشنوند و از نیکو ترین آنها پیروی میکنند آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده و آنها خردمندانند آیا تو میتوانی کسی را که فرمان عذاب درباره او قطعی شده رهایی بخشی؟ آیا تو می توانی کسی را که در درون آتش است برگیری و نجات دهی لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها من فَوْقِهَا غرف وبنينه تجري من تحتها الْأَنْهَارُ وعد الله لا يُخْلِفُ الله الميعاد ولی آنها که تقوای الهی پیشه کردند غرفهایی در بهشت دارند که بر فراز آنها قرفه های دیگری بنا شده و از زیر آنها نهرها جاری است این وعده الهی است و خداوند در وعده خود تخلف نمی‌کند ألم تر أن الله أنزل من السماء ما أنفسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به ثم يخرج به زرع مختلف ثم ثم يَهِيجُ فتراه مُصْفَرًا ثم يَجْعَلُهُ حُطَامًا اِنَّ فِي ذلك لَذِكْرَا لِعُلِ الْأَلْبَابِ آیا ندیدی که خداوند از آسمان آبی فرستاد و آن را به صورت چشمه هایی در زمین وارد نمود سپس با آن زراعتی را خارج میسازد که رنگ رنگهای مختلف دارد بعد آن گیاه خوش می شود گونه ای که آن را زرد و بیروح می سپس آن را درهم هم میشکند و خورد می کند در این مثال تذکریست برای خیردمندان افمن شرح الله صدره لیل فهو علا نور من فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَتِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكِرِ اللَّهِ اولائِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ آیا کسی که خدا سینه را برای اسلام گشاده است و بر فراز مرکبی از نور الهی قرار گرفته همچون کور دلان گمراه است؟ وای آنان که قلبهایی سخت، در برابر ذکر خدا دارند. آنها در گمراهی آشکاری هستند. الله نزل احسن الحديث كتاب متشابها مثالي مثالي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم بدل لين جلودهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم <تصفيق> الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له منها خداوند بهترین سخن را نازل کرده کتابي که آياتش در لطف و زیبایی و عمق و محتوا همانند یکدیگر است آیاتی مکرر دارد با تکراری شوق انگیز که از شنیدن آیاتش لرزه بر اندام کسانی که از پروردگارشان میترسند می افتد سپس برون و درونشان نرم و متوجه ذکر خدا می شود این هدایت الهی است که هر کس را بخواهد با آن راهنمایی میکند و هر کس را خداوند گمراه سازد راهنمایی برای او نخواهد بود. فمن یتقی بوجههِ سوء العذاب یوم القیامه و قیل للظالمین ما کنتم تکسبون آیا کسی که با صورت خود عذاب دردناک الهی را در روز قیامت دور میسازد. همانند کسی است که هرگز آتش دوزخ به او میرسد و به ظالمان گفته میشود، بچشید آنچه را به دست میآوردید. گذب من قبلهم من لا کسانی که قبل از آنها بودند نیز آیات ما را تکذیب نمودند و عذاب الهی از جایی که فکر نمی کردند به سراغشان آمد فآذاقهم الله الخزي في الحياه الدنيا ولعذاب الاخره اکبر لو كانوا يعلمون پس خداوند خاری را در زندگی این دنیا به آنها چشارید و عذاب آخرت شدیدتر است اگر می‌دانستند ولا قد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل لعلهم يتذكرون ما برای مردم در این قرآن از هر نوع مثلی زدیم شاید متذکر شوند قرانا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون قرآنی است و خالی از هر گونه کجی و نادرستی شاید آنان پرهیزگاری پیش کنند. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون خداوند مثالی زده است. مردی را که مملوک شریکانیست است که درباره او پیوسته با هم به مشاجره مشغولند و مردی که تنها تسلیم یک نفر است. آیا این دو یکسانند حمد مخصوص خداست ولی بیشتر آنان نمیدانند. میتون و این میتون تو میمیری؟ و آنها نیز خواهند مرد ثم يوم عند ربكم سپس شما روز قیامت نزد پروردگارتان مخاصمه میکنید فمن اظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق اذ جاء اليس في جهنم مسوى للكافرين پس چه کسی ستمکارتر است از آن کسی که بر خدا دروغ ببندد و سخن راست را هنگامی که به سراغ او آمده تکذیب کند آیا در جهنم جایگاهی برای کافران نیست والذی جاء بالصدیق و صدق المتقون. اما کسی که سخن راست بیاورد و کسی که آن را تصدیق کند آنان پرهیزگارانند لهم ما یشاؤن عند ربهم ذلك جزاؤ المحسنین آنچه بخواهند نزد پروردگارشان برای آنان موجود است و این است جزای نیکوکاران لیوکفر الله عنهم اسوأ الذی عملو و و اجرهم باحسن احسنیلذی کانو یعملون تا خداوند بدترین اعمالی را که انجام داده اند در سایه ایمان و صداقت آنها به و آنها را به بهترین اعمالی که انجام میدادند پاداش دهد الیس الله بکاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد آیا خداوند برای بنده اش کافی نیست اما آنها تو را از غیر او می‌ترسانند و هر کس را خداوند گمراه کند هیچ هدایت کننده ای ندارد و من يهدي الله فما له من مضل و هر کس را خدا هدایت کند هیچ گمراه کننده این نخواهد داشت آیا خداوند تبانا و دارای مجازات نیست؟ و لئین سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولون الله قل أفرئي ما تدعون من دون الله إن أرادني إن أرادني الله بضر هل هن كشفات ضره أو أرادني أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسب الله عليه يتوكل المتوكلون و اگر از آنها بپرسی چه کسی آسمانها و زمین را آفریده حتما میگویند خدا بگو آیا هیچ درباره معبودانی که غیر از خدا میخوانید اندیشه میکنید که اگر خدا زیانی برای من بخواهد آیا آنها میتوانند گزند او را برطرف سازند و یا اگر رحمتی برای من بخواهد آیا آنها میتوانند جلو رحمت او را بگیرند بگو خدا مرا است و همه متوکلان تنها بر او توکل می کنند قل قوم على عامل فسوف بگو ای قوم من شما هر چی در توان دارید انجام دهید من نیز به وظیفه خود عمل می کنم. اما به زودی خواهید دانست میعدی ذبوی خصیحی و عليه چه کسی عذاب خار کننده ای در دنیا به سراغش می آید و سپس عذابی جاویدان؟ در آخرت بر او وارد می‌گردد این انزل علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل يضل عليها وما انت عليهم بوکیل ما این کتاب را برای مردم به حق بر تو نازل کردیم هر کس هدایت را پذیرد به نفع خود اوست و هر کس گمراهی را برگزیند تنها به زیان خود گمراه می‌گردد. و تو معمور اجبار آنها به هدایت نیستی. الله یتوفل انفس حین موتیها والتی لم تمت فی منامها فيمسك التی قضى عليها الموت ويرسل الأخری إلى أجل مسمى إن فی ذلك لآیات لقوم یتفكرون خداوند ارواه را به هنگام مرگ قبض می میکند و ارواهی را كه اند نیز به هنگام خواب میگیرد ارواح کسانی که فرمان مرگشان را صادر کرده نگه می‌دارد و ارواح دیگری را که باید زنده بمانند باز می‌گرداند تا سرآمدی معین در این امر نشانه های روشنیست برای کسانی که اندیشه می‌کنند. ام اتخذو من دون الله قل اَوَلَوْ كَانُوْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ آیا آنان غیر از خدا شفیانی گرفتهاند؟ به آنان بگو آیا از آنها شفاعت میطلبید؟ تلبید هرچند مالک چیزی نباشند و درك و شعوری برای آنها نباشد؟ قل لله الشفاعت جمیعا له ملك السماوات والارض ثم لیه ترجعون بگو تمام شفاعت از آن خداست زیرا آسمان آسمانها و زمین از آن اوست و سپس همه شما را به سوی او باز میگردانند وإذا اذا الله وحدهش مأزت قلوب الذین لا يؤمنون بالآخرة و اذا ذکر الذین من دونه اذا هم يستبشرون. انگامی که خداوند به یگانگی یاد میشود دلهای کسانی که به آخرت ایمان ندارند مشمع میگردد اما هنگامی که از معبودهای دیگر یاد می شود آنان خوشحال می شود. قل قلی اللهم مفاطر السماوات والارض عالم الغیب والشهادت انت تحکم انت تحکم بین عبادك که فی ما کانو بگو ای آفریننده آسمان ها و زمین و آگاه از اسرار نهان و آشکار تو در میان بندگانت در آنچه اختلاف داشتند داوری خواهی کرد ولو ان للذین ظلموا ما في الارض و ومثله معه لافتدوا به لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامه و لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون اگر ستمکاران تمام را روی زمین است مالک باشند و همانند آن بر آن افسود شود حاضرند همه را فدا کنند تا از عذاب شدید روز قیامت رهایی یابند و از سوی خدا برای آنها اموری ظاهر می شود که هرگز گمان نمیکردند و بدل لهم سیئات ما کسبوا وحاق بهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون در آن روز اعمال بدی را که انجام دادند برای آنها آشکار میشود و آنچه را استهزا کردند بر آنها واقع می‌گردد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 ما را برای حل مشکلش میخواند. سپس هنگامی که از جانب خود به او نعمتی دهیم میگوید این نعمت را به خاطر کاردانی خودم به من دادهاند. ولی این وسیله آزمایش آنهاست اما بیشترشان نمیدانند. قد الذین من قبلهم فما عنهم ما كانوا این سخن را کسانی که قبل از آنها بودند نیز گفتند، ولی آنچه را بدست می آوردند برای آنها سودی نداشت. فاصابهم سیئات ما کسبو، والذین ظلموا من هاآولاء سیصيبهم سیئات ما کسبو وما هم و ماهم بمعجزین. بدی اعمالشان به آنها رسید و ظالمان این گروه اهل مکه نیز به زودی گرفتار بدیهای های اعمالی که انجام داده اند، خواهند شد و هرگز نمی توانند از چندال عذاب الهی بگریزند اولم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن يشاء و يقدر این ذلك آیا آنها ندانستند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ می سازند؟ در این آیات و نشانه است برای گروهی که ایمان می‌آورند. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم بگو ای بندگان من که بر خود اسراف و ستم کردید از رحمت خداوند نامید نشوید که خدا همه گناهان را می آمرزد زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است و انیبو الى ربکم و له من قبل ان یأتیكم من قبل ان یأتیكم العذاب ثم لا تنصرون و به درگاه پروردگارتان بازگردید، و در برابر او تسلیم شوید، پیش از آن عذاب به سراغ شما آید، سپس از سوی هیچ کس یاری نشوید. من قبل ان يأتيكم العذاب و, لا تشعرون. و از بهترین دستورهایی که از سوی پروردگارتان بر شما نازل شده پیروی کنید پیش از آن که عذاب الهی ناگهان به سراغ شما آید در حالی که از آن خبر ندارید <تصفيق> اتقول تقول نفسی یا على ما فرضت في جنب الله. يا حسره على ما فرضت في جنب الله وان كنت لمن الساخرين این دستورها برای آن است که مبادا کسی روز قیامت بگوید افسوس بر من از کوتاهی هایی که در اطاعت فرمان خدا کردم و از مسخر کنندگان آیات او بودم. او تقول یا <تص> بگوید اگر خداوند مرا هدایت می کرد از پرهیزگاران بودم او تقول حین ترى العذاب لو اندلي كره فاكون فاكون من المحسنين یا هنگامی که عذاب را می‌بیند بگوید ای کاش بار دیگر به دنیا باز میگشتم و نیکوکاران بودم بلا قد جاءت که آیاتی فکذبت بها و استکبرت و من الكافرین آری آیات من به سراغ تو آمد اما آن را تکذیب کردی و تکبر نمودی و از کافران بودی ترى الذين كذبوا على الله وجوههم و روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بستند میبینی که صورتهایشان سیاه است آیا در جهنم جایگاهی برای متکبران نیست و ینج الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم کسانی را که تقوا پیشه کردند با رستگاری رهایی میبخشد هیچ بدی به آنان نمیرسد و هرگز غمگین نخواهد شد اللهم خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل خداوند آفریدگار همه چیز است و حافظ و ناظر بر همه اشیا است له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون کرید های آسمان ها و زمین از آن اوست و کسانی که به آیات خداوند کافر شدند زیانکارانند قل الله الجاهلون. بگو آیا به من دستور میدهید که غیر خدا را بپرستم ای جاهلان ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك لان اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين به تو و همه پیامبران پیشین وحی شده که اگر مشرک شوی تمام اعمالت تباه می شود از کاران خواهی بود دل فاعبد وکم من الشاكرين بلکه تنها خداوند را عبادت کن و از شکرگزاران باش و ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه عما آنها خدا را آنگونه که شایسته است نشناختند در حالی که تمام زمین در روز قیامت در قبضه اوست و آسمانها پیچیده در دست او خداوند منزه و برتر است از شریک هایی که برای او میپندارند وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ فإذا فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ وَدَرْ سُورْ دَمِیدِهِ پس همه کسانی که در آسمان ها و زمینند می نیرند. مگر کسانی که خدا بخواهد. سپس بار دیگر در سور دمیده می شود. ناگهان همگی گی به پا می خیزند و در انتظار حساب و جزا هستند. و الارض ربها و وضع بین نبیین و شهدا وجین ابین و شهدا و قضی بینهم بالحق وهم لا یظلمون و زمین در آن روز به نور پروردگارش روشن میشود شود و نامهای اعمال را پیش می نهد. و پیام بران و گواهان را حاضر میسازند و میان آنها به حق داوری میشود و به آنان ستم نخواهد شد. و وفیت كل نفس ما عملت و هو اعلم بما يفعلون. و به هر کس آنچه انجام داده است، بی کم و کاست داده میشود و او نسبت به آنچه انجام میدادند وثيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم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 قالوا بلا ولكن حققت كلمه العذاب على الكافرين و کسانی که کافر شدند گروه گروه به سوی جهنم رانده میشوند وقتی به دوزخ می رسند درهای آن گشوده می شود و نگهبانان دوزخ به آنها می گویند آیا رسولانی از میان شما به سوی تا نیامدند که آیات پروردگارتان را برای شما بخوانند و از ملاقات این روز شما را برحضر دارند می‌گویند آری پیامبران آمدند و آیات الهی را بر ما خواندند و ما مخالفت کردیم ولی فرمان عذاب الهی بر کافران مسلم شده است قیل ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها فبئس مثو المتكبرین به آنان گفته می شود از درهای جهنم وارد شوید جاودانه در آن بمانید چه بد جایگاهی است جایگاه متکبران وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوُ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين کسانی که تقوای الهی پیشه کردند گروه گروه به سوی بهشت برده میشوند هنگامی که به آن می رسند درهای بهشت گشوده می شود و نگهبانان به آنان می گویند سلام بر شما گوارای باد این نعمت ها داخل بهشت شوید و جاودانه بمانید. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده و أورثنا الأرض نتبوء من الجنة نتبوء من الجنة حيث نشاء فنعم اجر العاملين آنها میگویند هم و ستایش مخصوص خداوندی است که به وعده خیش درباره ما وفا کرد و زمین بهشت را میراث ما قرار داد که هر جا را بخواهیم منزلگاه خود قرار دهیم چه نیکوست پاداش عمل کنندگان وترى الملائكه تحافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين دران روز فرشتگان را می‌بینی که بر گرد عرش خدا حلقه اند و با ستایش پروردگارشان تسبیح می‌گویند و در میان بندگان به حق داوری میشود و سرانجام گفته خواهد شد حمد مخصوص خدا پروردگار جهانیان است